سلام عزیز بکنم خدمت شناورندگان عزیز من شریفی هستم به این قسمت از پادکست هوگا من خوش آمدید در این قسمت در مورد لایه صحبت می کنیم سوال می شود که به دادگاه مراجعه کرده ایم و بر فرض مثال کپی از اوراق پرنده می خواستیم به ما گفتند لایه بدهید منظور چیست؟ لایهه یک برگه چاپی مشخص نیست که به عنوان مثال شما به محل فروش اوراق مراجعه کنید و بگوید یک برگه لایهه میخواهم خیلی تمام مکاتباتی که با دادگاه میشود عنوانش لایهه هست یعنی بعد از این که دواتر شد دادخواست شما سبت شد و شعبه رستی کننده پرونده شما مشخص شد در واقع هر مکاتبهی که منبت با دادگاه میشود عنوان لایهه دارد حتی همین درخواست اخسکوپی از اراغ پرونده پس لایه فرم خواستی ندارد، شکل خواستی ندارد و شما میتوانید درخواست خودتان را در یک برگه یا آچهار معمولی خطاب باندادگاه بنویسید تا بعد از آن توسط رئیس آن شبه قاضی دادگاه در واقع مورد دست رو لازم قرار بگیرد.